فصل یک مناجات با خداوند متعال دو بیتی ماه مبارک رمزان مناجات با خداوند متعال به ذکر و یاد تو افتار کردم وجودم را ز تو سرشار کردم الهی کن قبول این روزه ها را اگرچه معصیت بسیار کردم مناجات با خدای متعال مرا به حق رسولت که گشت نائب بخش مرا به حق علی آن ابوالعجائب بخش شده فزون خطای من و عطا از توست دمی بیا و مرا بین جمع تائب بخش به حق فاطمه یارب به مجتبا العف به جای این دل تاریک قلب ساقب بخش تمام عمر برای حسین گریانم مرا به گریان به این مسائب بخش به لحظه های اسیری بچه های حسین به آن سری که بشد میهمان راهب بخش به حق سید سجاد و باقر و صادق مرا به کازم زندان و در نوائب بخش بخش. به حق زامن آهو خدای من العف اگرچه من بدم و مملو از معایب بخش به حق نام جواد الائمه و حادی مرا به اسکری و آن امام قائب بخش به محضرت بکنم اعتراف بر جرمم. به بکار نیک و بدم لحظه لحظه راقب. بخش. ساقب روشن و فروزان. نوائب سختی ها. مناجات با خداوند شب قدر. شرمنده ام خدا ز گناهان بیهدم شرمنده ام ز جرم و خطایم نکن ردم یا غافر از زنوب بیا و مرا ببر. هر هرچند بنده بدیم یارب آمدم گفتی هزار دفعه که ای بندم بیا بار هزار و یکم در به خانه زدم آنقدر بود توشه من پرزم اسیت تا آمدم اسیر تو و رحمتت شدم امشب به حق فرق سر شاه لافتا افوام نما به حق علی گرچه من بدم با نام مرتضا تو پذیرفتیم خدا من پیروه محمد و آل محمدم یا العزیز تو ستاری و رحیم با مهر اهل بیت تو دوزخ نخواهدم بخشیده مرا به یمانم خدای من امشب نجف و کرب و بلا گشت مقصدم